قم زمانه که هیچش کران نمی بینم دباش جزمه چون عرقبان نمی بینم به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت چرا که مسلحت خود دران نمی بینم زعافتا به قدح ارتفاع عیش بگیر چرا که طالع وقتان چونان نمی بینم نشان اهل خدا آشقیست با خود دار که در مشایخ شهرین نشان نمی بدین دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش ایان نمی بینم قد تو تا بشد از جوی بار دیده من به جای سر جزا به روان نمی بینم در این خمار کسم جرعی نمی بخشد ببین که اهل دلی در میان نمی بینم. نشان موی میانش که دل درو بستم زمن مفرس که خود در میان نمی بینم من و سفینه حافظ که جز در این دریا به زاعت سخن درفشان نمی بینم